اصل ششم بخش دفم تا ساعت دهانیم روز بعد در اخت خواب می خلدیدم. تا آن ساعت رنگ پریده دلواپس بیخوابی کشیده از اتاقم بیرون نیامدم مادرم آمد کنار تخت خوابم نشست میخواست بداند که چرا ناراحت هستم آه چقدر خوب بود اگر پدرم را تبعید نمی کردم. با او اختر بودم اقلن این لذت رو داشتم که سرم را رو رو روی شانه بگذارم و گریه کنم و او آنقدر فهم نداشت که دلیل غم و س م را از من نپرسد. اما مادرم از آن امل ها بود که تصور می کرد کلمه عشق فقط در کتاب حافظ باید خوانده شود. او هجر وسال را نمیفهمید برایش در عالم خارج جز همین زندگی با پدرم چیزی وجود نداشت. پدرم کم حرف بود و از وراجی بیزار اما مادرم نمی توانست ادراک کند که گاهی انسان احتیاج دارد که لب ببندد و دم نزند ساعت ده و نیم تلفن صدا کرد از اتاقم با همان پیراهن خوابی که تنم بود پریدم به سرسرای طبقه بالا تلفن آنجا بود دیگر صدایش را میشناختم مثل همیشه آرام و متین و سنگین صحبت کرد برخلاف همیشه احوال مرا پرسید مرا شما خطاب کرد پس از گفتگوهای عادی پرسید تشریف میآورید اینجا گفتم نمیدانم پرسید مگر قرار نگذاشتیم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 آنچه توانستم از او در بیاورم این بود که به کار پرداخته بود. شاید همان روز تصمیم گرفت که صورت مرا بسازد. با این چشمایی که الان ساخته. یاد حرفش افتادم که گفت آرزوی من این است که صورت تو را بکشم و تو تو را نشناختم چگونه می توانم شبیه تو را بسازم. پناهگاه او کارا زحمت بود. هر شکست می‌خورد به آستان کار پناه می و آرامش خود را به دست می آفر. این بزرگترین خوشبختی است که در زندگی نصیب انسانی می شود اما این بار شاید تحمل بیشتری لازم بود کمی با رنگ و قلم و بازی کرده بود به نظرش آمده بود که ازش ساخته نیست آرنجش رو روی زانویش گذاشته و سرش رو به دستش تکیه داده بود چند دقیقه در فکر فرو رفته و چون این نتیجه گرفته بود که حق با اوست صلاح هیچ کدام نیست آن وقت از خودش پرسیده بود. پس چشم چه میگفتند؟ تمام این تعمال و تعمق فقط نیم ساعت طول کشید. بد به کارش پرداخته بود. این آنجوری بود که من توانستم ازش در اما واقعیت از این خیلی شدیدتر بوده است. او که همه چیز خود را به همه کس نمی گفت. به من هم نگفت. این تصویری که الان در برابر شماست. برخلاف آنچرا که من می دانستم حکایت می کند.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 بدبختی ما در این است که هر دو یک دیگر را تا نزدیک هم بودیم نشناختیم و او که اصلا مرا نشناخت. این چشمانشان نشان میدهد که هرگز روح مرا ادراک نکرده است. تقصیر از من بود. او اگر چیزی نمی گفت خواهش طبیعتش را برمیآورد هنار من که دردش را به روخ همه کس نمی کشد. حرف نمیزند. او منظور خودش را با اثرش بیان میکند. اما من می توانستم به او بگویم که چرا اول پای تلفن آنجور جواب دادم و بعد خلاف آن عمل کردم. بی اختیار از پای تلفن زیر دوش رفتم بعد چند دقیقه در صندلی راحتی آرام نشستم و به آرایش خود پرداختم. نه به این قصد که پیش او بروم، نه در باطن من قوه قوی تر از اختیار و اراده من بود. مرا واداش که چنین کنم. مثل اینکه میخواستم به یک جلسه رسمی بروم و قرار از نطخ تشریفاتی ایراد کنم موهای سرم را از فرق به دو طرف سر محکم بستم و یک پتا من سیاه تن کردم در آینه همش او را میدیدم نشسته بود و داشت نقاشی میکرد تخت شسی در دستش بود رنگ های جور باجور. رنگ های زننده رنگ های ناجور کنار هم روی تخت خمیر می شدند. آنها را با کاردی مخلوط می کرد. یک مرتبه این فکر به نظرم رسید که اگر در کارگاهش را باز کنم و وارد اتاقش بشون به من چه خواهد گفت؟ یقین از جا خواهد جست و مرا در آغوش خواهد گرفت. و آنقدر مرا خواهد بوسید تا نفسم بند بیاید. نه این طور صلاح نبود. این منظر مرا خوش نیامد. فکر دیگری به نظرم رسید. به او تلفن میکنم میگویم خواهم آمد. تعجب نخواهد کرد. از دو دلی و تزلزل من تعجب نخواهد کرد. اما او با همه فرق دارد. ماکان باید برای من احترام قائل باشد. نباید بداند که من کیستم. من که به ضعف خود بیش از همه آگاهم. اگر او هم مرا اینطور بشناسد دیگر کار من ساخته است. نخواهم رفت. پس چرا وقت نهار لباس پوشیدم؟ به مادرم چه بگویم؟ بگویم که کجا مهمان هستم؟ یک ساعت با سر و صورت و لباسم ور رفتم. در عین حال باطن من در سوس و قداس بود. با خود می جنگید. چه میخوام. دوسه دو سه مرتبه رفتم پای تلفن گوشی را برداشتم نمره او را گرفتم. اما چر نکردم با او حرف بزنم. بار آخر دیگر در دست من نبود. همین که صدای او را شنیدم گفتم، ماکان تصمیمم را عوض کردم میآیم گفت بیا بدون اینکه به مادر چیزی بگویم از خانه بیرون رفتم بیچاره او به این آمد و رفتهای من عادت کرده بود اما دیگر حالا با وجود اطلاعی کامل از فعالیت سیاسی من پس از تبعید پدرم ترس برش داشته بود نمیخواستم با او جدال کنم. دمه در به فضه سلطان گفتم نهار مهمان هستم منتظر من نباشید پیر گفت خدا همراهت در راه با چنان شتابی رفتم که گویی در ورته گیر کردم و جز این راه دیگر چاری برایم باقی نمانده به همه زنین شده بودم از هر کس که به من نگاه می کرد می ترسیدم. همه را جاسوس شهربانی می دانستم به نظرم آمد که همه دست به یکی کردند که جام شهد آسایش مرا بشکنند خانش پشت مسجد سپه سالار بود هنوز در نزده آقا رجب مرا به داخل حیات برد. آن طرف حیات رو به آفتاب، راه به ایوانی که پیچه امین و دولت تارمی های آن را پوشانده بود منتهی می شد. آقا رجب بدون اینکه به من نگاه کند، مانند چوبی که لباس بر تنش کرده باشند با قیافی که کوچکترین تعثرات روحی او را نمایان نمی ساخت، کنار استادا با دست به راهپله پله اشاره کرد. دو تا بچه کوچک در حیات توی آفتاب بازی میکردند. یکی سوار سه چرخه بود و دیگری آن را در یکی از اتاقهای طرف دست راست زنی که تنبان سیاپایش بود زرف های چینی را خشک کرد. در همین هنگام در اتاق بالای ایوان باز شد و او در حالی که تخت شستی و قلمو را در یک دست نگاه داشته بود تا دم پله آمد با دست راست زیر بازوی چپ مرا گرفت و مرا به اتاقش برد من باید همه چیز را درست و پوست‌کنده به شما بگویم تا شما بفهمید که من چگونه بر سر آتش جوش میزدم. تا شما ادراک کنید که او چگونه نادانسته با من مانند گربه کوچکی که با دمش بازی کند رفتار میکرد. من منتظر بودم که به محض ورود به اتاق او مرا در آغوش گیرد و من صورت خود را به چرخانم و مانه شوم چرا این تصمیم را گرفته بودم؟ بر اینکه میخواستم تسلط خود را بر او حفظ کنم. در صورتی که من لهله او را میزدم. دلم میخواست لبهای او سر و صورت مرا بپوشاند. دلم میخواست. دلم میخواست آنچه را که در زندگی آرزویش را کشیدم و هرگز نصیبم نشده در آغوش گرم او احساس کنم. با وجود این برای اثبات و حفظ قدرت شخصیت خود چنین این تصمیمی گرفته بودم. نمیخواستم پی ببرد که مانند عروسک سک بیرادهی قوه قوای عادی مرا به سوی او کشنده. آن وقت او آنقدر آرام بود. آیا از فرد استراب جرأتش را باخته بود یا اینکه او هم مرعوب شده بود. شاید تلفن من تأثیر خود را کرده و او را سر عقل آورده بود. آن روزها خیال می کردم که استاد مرد عاقلی است و تا خیر و شر کاری را نسنجد اقدام نمی کند. فکرش را بکنید که من منی که با یک چشمک صد تا جوان را مثل انتر لوتی به رقص در می آوردم. مجبور بودم برای یک بوسه او گدایی کنم. مرا به داخل اتاق برد. آرام به نظر می رسید. اتاق ای بود. دو صندلی راحت و یک میز گرد تنها اساسی آن بود. روی میز کوچکی یک گلدان پر از گل دیده می شد. مرا روی صندلی نشاند. خودش هم پهلوی من نشست. چند لحظهی به من نگاه کرد. آن وقت پرسید. چرا نمیخواستید بیایید گفتم با خودم در جنگ بودم پرسید بالاخره کی برد گفتم شما گفت با من که در جنگ نبودید همه فنون دلربایی از یادم رفت دیگران آن نگاه ها که همه را از پا در میآورد از چشمهایم تراوش نمیکرد آن همه قول و قذلی که بلد بودم سر زبانم خشک شد دیگر خندههایم از یادم رفته بود کوفته و شکست خورده به او نگاه میکردم. اگر یک کلمه دیگر می‌گفت، بوخت گلویم را میگرفت. اما آقا رجب من را از اثر نجات داد. صدای پای او در ایوان شنیده شد. گفتم کارهایتان کجاست؟ گفت همین اتاق پهلوی ای من است. گفتم بگذارید تماشا کنم. گفت چیز زیادی ندارم. ناتمان فراوان است. حالا می‌خواهید تماشا کنید یا بعد از نهار؟ گفتم هم حالا و هم بعد از نهار. گفت سبب کنید. رجب چه کار داشتی؟ آقا رجب با سیمای نقاب‌زده‌اش وارد اتاق شد و گفت ارزی نداشتم. استاد گفت ببین چه میگویم. اگر کسی آمد من نیستم. فرنگیس خانم را که میشناسی آمده است که من صورتش را بکشم. گفت بله آقا. استاد ادامه داد. هر که ازت چیزی پرسید، همین را میگویی. جواب داد بله آقا. استاد گفت کار دیگری نداشتم. آقا رجب پرسید که هار میل میکنید؟ استاد جواب داد: ما حالا میرویم به آتلیه. تو سفره را بینداز. ما خودمان خبر میکنیم. بعد رفتیم به کارگاهش. تابلوی بزرگ جشن کشف هجاب در آن زمان هنوز ناتمام بود. و سر چندین تابلو از رویات خیام کار می‌کرد. خانه‌ی رایاتی آخرین اثر او در تهران داشت تمام میشد. من مجذوب این همه قدرت و نبوغ شدم. ناگهان خود را در عالمی که آرزویش را میکشیدم یافتم بهد زد او بادلی غم گرفته مدتی به آنها نگریستم استاد دمه در ایستاده بود و سوسه نگاه او را از پشت سر احساس میکردم جلای این کارگاه مرا گرفت دست و پای خودم را گم کردم من در اروپا کارهای استادان بزرگ دنیا را کمابیش دیده بودم در ایتالیا یک دنیا زیبایی تابلوهای لوناردو داوینچی و رافائل آدمی را به بهد دارد من کارهای مکتب فرانسه را دوست داشتم در مونیخ آثار رامبراند و دوره را دیده بودم اما آنچه برای دوره نخستین بار در اطلیه او دیدم بیشتر در من تأثیر کرد نه برای اینکه استاد هنرمند بزرگوارتری بود نه آنچه من در آن کارگاه دیدم همش پاره ای از روح خودم بود اینهایی که استاد در پردههایش تصویر کرده بود به زبان من حرف میزدند زبان مرا میفهمیدند با چشم من نگاه میکردند من آنها را میشناختم و دردهایشان را میفهمیدم یک ناآشنایی خودی در آنجا حکم فرما بود در نظر من حوادث و مسائبی که در تصویرها جلوهگر بود در وهله اول جلوه توجه نمیکرد بیشتر از این خوشم میآمد که آدمهایی که این حوادث به سرشان آمده از کسان و نزدیکان و هموطنان خود من هستند آنچه آنها تحمل می کردن کما بیش همان چیزهایی بود که به سر من آمده بود و یا می آمد. تابلوی جشن کشف هجاب تازه تر شده بود. اما قیافه زن با حالت ماسکش تقریبا تمام می نمود. فوری مادرم افتادم. مادرم به محض اینکه سر و سده را افتاد از ایران فرار کرد و رفت به کربلا و می خواست آنجا مجاور بشود. اما خالجانم جانم تقریبا به همین وز گرفتار شد. وزیر ادریه آخون می‌خواست دست خاله را که یک عمر تسبیح گردانده بود ببوسد تمام این مناظر آدم ها همه به نحوی با من ارتباط داشتند و من احساس کردم که بهشتی به که آرزویش را می‌کردم در این اتاق فراهم است باز یادم افتاد که چه بدبختی از دست این مرد که اکنون پشت من ایستاده است نصیب من گردید اگر آن روز در دفتر مدرسهش کمی توجه می‌کرد شاید امروز من هم خوشبخت بودم برگشتم با نگاهی که تمام این شوق کوفته مرا نمایان به او نگاه کردم پرسی چیست چرا اینطور به من نگاه می کنی؟ دو سه قدم به من نزدیک شد دست انداختم به گردنش و گفتم ماکان دلم میخواست مثل تو نقاش بودم های مرا نوازش داد مدتی مرا آرام نگاه داشت بعد با دو دست بزرگ استخانیش گونه های مرا گرفت. خیره به چشم های من نگریست. مدتی لبهایش تکان میخورد. مثل اینکه عقب کلماتی که گم شده بود میگشت؟ فقط چشم های مرا بوسید و هیچ نگفت. چه می توانست بگوید؟ آیا لازم بود آنچرا که پنج سال پیش با زبان بی زبانی گفته بود باز تکرار کند؟ اما این را فهمید که من دیگران دختر هوسباز باز جلفان روز نیستم. این را می دانست. آقای نازم نمی دانید وقتی شوق ایجاد و آفرینش در شما هست اما استعداد و پشت کار ندارید چطور یعص و نامیدی در لابلای وجود شما می خزد و دنبال لانه می گردد؟ روی چار پایه نشستم و او کنار من ایستاده بود. در جوار او زیبایی و سعادتی که تمام زندگی تلخی داشت احساس می ناگهان شروع به صحبت کرد آرام مثل اینکه هایی را که قبلا از بر کرده بود دارد میخواند گفت می‌خواهم چیزی بگویم که شاید برایت تازگی داشته باشد شاید هم نتوانی و نخواهی بفهمی اما من مجبورم به تو بگویم زیرا نمیخواهم دختر جوانی مثل تو را فریب بدهم سرنوشته من با سرنوشته این مملکت تو هم است. برای من خوشبختی انفرادی دیگر وجود ندارد. اگر تا بخواهی زندگی خودت را با مال من پیوند بدهی بدبخت میشوی. مثل بچه هایی که درسشان را بلد نیستند به تده پته افتاد. اما من حوصله‌ام سر رفت و گفتم می‌دانم. هرچه تو بخواهی بگویی خودم فکرش را کردم. می‌دانم. من شایسته ای تو نیستم. برای تو جوان هستم. تو همش در فکر آینده هستی اما من هم میخوام یک آن در تمام عمر خودم لذت زنده بودن را بچشم این است که آمدم و دارم خودم را به دامان تو میاندازم میدانم که دو دلی من تو را مشکوک کرده فردایی برای من وجود ندارد فردای من تاریک است با تو تاریک است بی از این هم بدتر است فایده ندارد حرف نزن من از تو خیلی جوانتر هستم کاش می چه بر سر من آمده. من خیلی سال خورده تر از آن هستم که سنم نشان میده. گفت بگو برای من. چه به سرت آمده؟ گفتم شما تا به شنیدنش را ندارید. می ترسم که از نظر شما بیوفتم. گفت برعکسش هم ممکن است. پرسیدم برعکسش چیست؟ گفت برعکسش این است که شاید ارزش شما در نظر من خیلی از آنچه تصور میکنید بیشتر باشد بیشتر شود. گفتم نه نه گفتنی نیست همه مردها از این حرفها میزنند آقای نازم شما بگویید چه میتوانستم به او بگویم در گفت های آن روز هیچ چیز تازهای برای شما وجود ندارد آنچه من حدس زدم درست درآمد این مرد از فولاد بود وقتی صدای مرا از پای تلفن شنید دیگر تصمیمش را گرفت او برای هر فردی احترام قائل بود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 او کسی را میخواست که به پای او گذشت داشته باشد و همراهش بیاید از هیچ بلایی نهراسد. نهار خوردیم. از همه چیز گفتگو کردیم، جز از عشقی که هر دو پنهان در دل می‌پروراندیم. بله. عشق آشکار ما همان شب در کنار نهر کرچ زیر درخت‌های زبان گنجش آغاز شد و همانجا پایان یافت. ببینید. این مصیبت عظیم زندگی اوست. میدانید آتشی که زیر خاکستر میماند، چه دوام و صباتی دارد. عشق پنهانی، عشقی که انسان جرأت نمی هرگز با هیچ کس درباره آن گفتگو کند، به زبان بیاورد. به هر دلیلی که بخواهید، از لحاظ قیود اجتماعی، از نظر طبقاتی، به سبب اینکه که معشوق ادراک نمی کند. و به هر علت دیگری آن عشق است که درون آدم را میخورد و میسوزاند.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 و اون مردی سنگ دل که اصلا بوی عشق به مشوامش مش نرسیده و کوچکترین توجه و ای به من ندارد. از همین جهت او بیشتر زجر میکشید و همین تابلویی که الان در مقابل شماست دلیل آن است. چه خوش بود زندگی من اگر آن روز جرأت پیدا می و خودم را به او می شناساندم. آنطوری که اقلا امروز شما مرا می تمام آن روز پیش او بودم. همش در اتالیه نشسته بودیم. گاهی کسی به دیدن او می آمد. آن وقت آقا رجب فقط تلنگاری به در ماکام ماکا مؤدب از من معذرت میخواست و کارتانی که در آن ترهای گوناگون قرار داشت و مجله‌ای که در آن آثرش را در اتریش به رسانده بودند و با یک جلد خیامی را که او مصور کرده بود به من میداد و میرفت. آن وقت من تنها میماندم. یا آنچرا که در دستم بود مطالعه کردم و یا غم خودم را میخوردم. گاهی در آن عالم بی خودی همه چیز فراموشم می و خودم را فارق از هر وبالی تصور میکردم. طرهای ترهای او را زیر و رو میکردم. کردم. از تماشای کارهای ناتمامش لذت می بردم. زمان به طوری وسش که وقتی هوا تاریک شد خودم تعجب کردم. همین که از جایم بلند شدم گفتم آکان ما, ما دوست هم خواهیم بود. او گفت رفیق باید باشیم. معنایش برای من آشکار بود. او هم رو سفیدش را درآورد. پرسیدم. می همراه من بیایید؟ گفت میآیم کمی شما را مشایعت کنم. گفتم بیایید با هم برویم کنار نهر کرج گفت چه فایده؟ امشب با شب یک دنیا فرق دارد. گفتم برای شما. صورت مرا محکم در دو دست گرفت. چشمایش را به نگاه التماس کننده من دوخت و گفت. اگر میفهمیدم توی این نگاه تو چیست؟ آن وقت امشب هم دیشب میشد. تصویر تو را هم می ساختم. گفتم کمک کن که من خودم را به تو بشناسانم گفت می ترسم آن وقت بدبخت بشوی. گفتم ادانشم هستم. دولبش را قنچه کرد و فهمیده نفهمیده به پیشانی من چسباند و با هم از خانه بیرون آمدیم